ایران ویج. بازنگری در تاریخ قلمرو میانی مسعودی در کتاب مروج و زهب والمعادن الجوهر به معنای مروج در عربی یعنی مغزار زهب یعنی زر یعنی مغزارهای زر و کانهای گوهر مروج و زهب والمعادن الجوهر یه مطالبی گفته منطقه ما متهم میشیم که ما داریم سند متأخر اسلامی میخونیم اما این که کیومرس حقیقیه دقیقا از سند ششم برای ما خونده میشه که چون مسعودی گفته پس ما باید قبول کنیم اسناد اسلام کلیاتشون سه دسته کلی تقسیم میشن یکی اسنادی هستن اصلاد که هم پیشدادی کیانیان رو میشناسن هم هخامنشیان رو میشناسن مثل آثار باقیه بیرونی بنده یه سری هستن که فقط پیشدری کیانیان میشناسن مثل خیلی از اسناد اسلامی یه گروه اندکی هم هستن که فقط هخامنشیان رو میشناسن مثل اثر ابن عبری مختصر تاریخ و دوبر این سه فردوسی جز اونهایی بوده که پیشداری کیانیانی و میشناخته که انتاش به عمله اسکندر. با نام و یاد یک آنپر وردگار هستی بخش با عرض سلام و ادب خدمت همیهنان گرامی، عزیزان ارجمند و به اضافه دوستانی که برنامه پژوهشی ایرانویج ویج رو دارن دنبال می کنند ما در قسمت گذشته باز هم ادامه دادیم این بحث بغرنجی که در مورد کیومرس مطرح هستش جناب آقای فیروزی بحث جدید رو مطرح کردن حتی بحث جدیدی که قبلا هم مطرح کرده بودن ولی به شکل شفافتر مطرح کردن که اساسا داستان خدایان ایرانی در تمدن دنیا کاملا از بین رفته حالا دلیل از بین رفتنشون بیشتر به ادشیر بابکان نسبت میدن حالا چقدر این مسئله درست باشه نیاز به پژوهش‌های جدی داره آیا اساساً این داستان خدایان ما از بین رفته و یا خدایانی که ما الان داریم زروان و اناهیتا و بهرام و اورمزد و اینها ترتیبشون از بین رفته و به اضافه اون ذهن در واقع به قول خود که شعر و ادبیات و فلسفه رو دوست داره استوره سازی کرده از اینها و این پادشاهان قدیمی خودش رو تبدیل به استوره کرده اصلا چن مدعایی آیا قابل اثبات هست یا نیست ما در موردش بحث ها خواهیم کرد و اینکه جناب آقای ایران مهر هم مسئله کیومس رو مطرح کردن و یه قسمت های از شاهنامه رو مطرح کردن مدعای جناب آقای ایران مهر ایناست که خب ما برنامه قبلا داشتیم تحت عنوان برابری ما انسان رو رسندیم به از آفریقا به سمت در واقع غارهای زاگروس یعنی از هزار سال پیش که انسان هوموساپین شروع کرد به تکامل خودش تا هزار سال پیش خب انسانی بود انسان‌هایی بودند که خرد چندانی نداشتند تقریبا شبیه حیوانات زندگی می‌کردند و اگر کل مدعای ایشون هستش که اگر ما کیومرس رو متعلق به انسان های دوره 35 هزار سال پیش میدونیم یعنی دوره ای هستش که آرام آرام خرد داره شکل میگیره انسان خردمند داره شکل میگیره انسانی که حالا قبلا درسته آتش رو به وجود آورده بود ولی این انسان انسانی هستش که در این فلات و در این قلم میانی شروع می‌کنه به ساختن تکنولوژی های جدید انسانی چرا موقع ایران مهرز نه پاسخ به همین مسئله خدایان ادامه‌ی مبحث خودتون رو در مورد مرس بفرمایید چون بحث داره خیلی کند پیش میره یک کمی هم در واقع پیش بریم در مورد خود دوره کیومرس انسان انسان‌هایی که در این دوره بودند و مشخصا زمان و مکانی که در خود همین قلم روی میانی اینها در حدود 35000 سال پیش انسان انسان‌هایی که در واقع کیومرث نماد اون انسان‌ها هستش اونا در واقع چیکار می‌کردن چه چیزهایی رو به وجود آوردن چه تکنولوژی‌هایی رو شکل درود بر شنوندگان عزیز بحث رو دنبال میکنیم بله اصلا تعریفه تعریف مختلفی از تاریخ شده تعریفی که دقیق در این تعریف هایی که درباره تاریخ هست اینه که تاریخ مکان زمانمندیست است که روخدادها در آن واقع می‌شوند ولی روک داره میگه میگه باید هم زمان رو بگی هم مکانو بگی ما هم از اول فرضمون همین بوده منتهی به قول شما از این بند و بستاد رها نمیتونیم بشیم اینقدر شاخه شاخه میشه بس خدمتون بگم من اول توضیح بدم نشست پیش درباره گایا صحبت شد که ما چرا رو با گایا مقایسه میکنیم برای که دیدین که همه کاراشون یکی بود مونه میزد حالا چرا گایا استوری به اون شکلی که هنوز آسمان و زمین آفریده نشدن اون هست اما کیومرس انسانه من یه مثال میزنم یمه در استوره های هندی ودایی یمه یمه خشایته دیگه جمشید خودمونه دیگه یمه ج درست خداست خداست ولی خب توی داستان‌های ما تاریخ ما تامیش شبیه انسانه دیگه اصلا در گاته اشو انسان تا یه مثال دیگه اصلا مثال دیگه مثل گایا داریم ببینید من دات میزنم آقا این قلم روی میانی یک مرکزی داره این فرهنگ از اینجا رفته به شپقاره و از اینجا رفته به اژه اونا فرزندان این فرهنگ هستن اونا ببینید تمام داستانه هند از جمشید آغاز میشه پیش او نداره فرزند ما هن. فرزند همه چیز پدر رو نداره از از از خیلی روشنه ما مهترین بابا چجوری اینو بگیم معلومه که مال ما کاملتر و درستره گیاه ما تازه آغاز زندگی در اجس در که ما آغاز زندگیمون خیلی قبل‌تر بوده گیاه انسان بوده داشته کارهایی میکرده این از این یک هم که الان مربوط به اینجا نیست فقط خیلی کوتاه بگم که در آغاز و پایان دوره ساسانی دو مطلب ساسانیان رو بسیار آزار میداد. خودشون رو نه چون کشور رو در معرض خطر قرار میداد، در آغاز دوره ساسانی فشار دین مزدی asnای قدیم اینو با مزدی asnای که می‌شناسیم اشتباه نکنیم دین مزدی asnای قدیم در آغاز دوره ساسانی خیلی فشار می برد. در میانه دوره ساسانی شاپور دوم و اون آذرباد مهرسپندان خب حالا یه مقدار سر و سامان دادن در پایان دوره ساسانی زروانگرایی به شدت آزار می‌داد اینارو این دستکاری هزارها اردشیر باباکان شاید درست کاری که تو زندگیش کرد همین دستکاری هزارها بود منتها اثر سوء نیت نکرد هزاره ها رو دستکاری کرد تا این باور عمومی باعث ثبوت کشور نشه که از آخر دیدیم شد نامه رستم فراهرمزد بله. برداشته ببینید این نامه زروانیه آقا همه چی از دست رفته ستاره ها دارن میگن ما شکست می‌خوریم که اصلا باور ایرانی این نبود کوشش و تلاش بود اصلا سرنوش مطرح نبود این داشت میداد ساسانیان رو دستکاری کردن هزاره ها رو به امیدی که این پایان هزار آخر بگذره بعد درست کنم برگردونه از تو گنجنا هاشون متاسفانه اینقدر این کار طول کشید تا گنجیننا از دست رفت نامدار های گم شده متاسفانه بله پس نیتی در کار نبوده اینو دقت کن بعد یک مسئله ای که ما اینا رو میگم شما درست فرموین اینقدر زیاده ما یادمون میره که چیزایی رو تبعین کنیم ما هی میگیم گیه نخواستین انسان. بحث انسان شناسی من روز داشتم تو فضای عزیز با که بحث میکردم متوجه شدم اصلا فرق بین مردم شناسی و انسان شناسی رو نمیفهمه متزفان اینجا ای فیروزی ده. کاملا مسلطنم میدونن مردم شناسی با انسان شناسی فرق میکنه گویا لفظ بنده یه مقدار یعنی من... خیلی بهش نپرداختم باز نکردم که منظورم از نحوه انسان چیه این فرقونه ببینید همون جای شاهنامه یه جاش داره میگه زخاک و زخاشاک تن پرورد یعنی تن درست میشه متای ویژگی داره نه گویا زبانو نه جوی آخرت یعنی ناطق نیست و خرد هم, هم نداره منطق نداره خب این کی این پیش از 50000 سال پیشه چون بارها گفتیم زندگی انسان خردمن از 50000 سال به این طرف انسان شناسا آنتروپولوژیست ها تعریفش میکنن پیش از 50000 سال بله انسان بوده من بله. منتها الا ببینید اینجا میگه چوز این بگذرت مردم اومد پرید شد این بندها رو سراسر کلید حالا از انسان مردم پرید مردم پرید حالا من بعد دقیقاً فرق وجودی بین بل. بل. مردم و انسان یعنی شما آفرینش اول تو شاهنامه است بعد خرده، بعد کیومرسه یعنی وقتی ما میگیم کیومرس انسانی که بعد از هزار سال پیش داریم از تعریف میکنیم کنیم نه نه انسان که 124000 سال پیش در آفریقا بوده اینو تفاوت قائل بشیم کیومرس کیومرس که میگیم اینه بعد خدمتتون عرض کنم که ببینید ما گاهی راسل میگه که ما همیشه کمترین دلایل رو برای متأصبان ترین عقایدمون داریم میگه ما همیشه برای متعصبانه‌ترین عقایدمون جزه اون عقایدی هستند که اتفاقا کمترین دلایل همیشه واسه داریم. من دیدین که تا حالا سکوت کردم در این باره اصلا دوستم ندارم همین الانم هم اصلا خوشم نمیاد صحبت کنم. چون اینی که ما خیلی ربطی به آسیای میان فرهنگیمون نداره نظری بنده نبود. اسناد ما تفلکات دارن داد میزنن. یعنی هزار تا سند خوندیم که آقا ایرانویش کیانسه است، ایرانویش کنگدج درچه زرهه، ایرانوش زیر البرز بنابراین اون همه مغلطه و شلوغی که تا پیش از نشاست 32 بود دیگه فروکش کرد نه اینکه بنده بگم خبری تو آسیای میانه نبوده اسناد گفتن الان هم من عرض میکنم فیروزی اگر بحث مادشون اگه بیرون کشیدن ماد کهنشون اگه بیرون کشیدن آسوایی از دل تاریخ رو تو بحث پیشا ایلامی تو بحث دودمان صفر ایلام کار کنن به جایی که بخوان از تاج سر مرس بذارن باور کنین یک فصل دیگه ای تو تاریخ ما گشوده میشه اون فصل ماده کهن و آسوی تو تاریخ کشور ما به نام هیچ کس جزوهای فیروزی نوشته نخواهد شد چون الان همه دارن رو میکوبن مسخره میکنن اما بعد نسل بعدی میفهمن که این آقا چیکار کرده دودمان میخوایم بکشیم بیرون این شکلی بکشیم بیرون هنوز خیلی دودمان گم داریم. همون من باور کنید تخصصش رو ندارم همون دودمان سفر ایلام رو مثل دودمان سفر مصر تاریخاشون با هم میخونه واقعا یکی مثل های فیروزی با این دانشش میتونه این کارو بکنه من دارم پیشبینی نمی کنم مثل روز برام روشنه این بحث حقیقی کردن این آدما مثل همون بحثیه که فریدون آسیای میانه رو بین پسرش بخش کرد دیدیم که بعد اصلا جور در نیامد دیگه حالا قول معروف سلاای مملکت خیش خسروان دارن ما من حیفم میاد من چون از توان آقای فیروزی آگاه هم. بعد خدمتون بگم که واسه من عرض میکنم روش تحقیق میبینین که کسایی هستن که مثلا به بس ماده کهنه آقای فیروزی خیلی ایراد میگیرن ایراد الکی میگیرن من امروز خدا شاهد هر چی گشتم اسناد رو زیرو کردم نه به عمد و قرضا برای اینکه گفتم پوپر میگه که شما برای نقض پوپر میگه مورخ باید خودش دنبال نقض نظریش باشه میگه خود مورخ باید تلاش کنه ببینه میتونه نظریش رو نقض کنه با اسناد جانبی من هر چی گشتم که یه گیری تو این ماده کوهن آی فیروزی پیدا کنم که بهش بگم آی فیروزی اینو حواست باشه که از جای دیگه بیت گیر نادن من پیدا نکردم اینقدر دقیق نظریاشون یا نظریه زمان گشتاسپشون آقا من بهتون بگم مولای درزش نمیره هر کس میگه اوی فیروزی داره اینو اشتباه میگه بدونین حسادت میکنه از پشتی بلنگو میگه اما دارم میگم آقا این بحث یک خچه بهش وارده ببینید مثلا میگن که آقا زرتوشت گفته که یک جمشیدی بود کار بد کرد توی یسنا پس داره به فرد حقیق اشاره میکنه ببینید من پرسش 26 مینوی خرد رو میخونم پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مردمی که در زمان کیومرس و هوشنگ پیشداد و فرمان و حکمرانان بودن تا زمان گشتاز چون این کار بودن و حالا اون که بیشتر کسانی بودن که نسبت به ایزادا ناسپاس بودن اصلا میگه پیش از گشتاس همه ناسپاسن فقط جمشید نیست که میگه از کیومرث تا هم چی چرا چون اوستا یک متن به حساب زرتشت نهوره یعنی اون چون گشتاس حالا حرفشون چیه میگن تن زرتشت زمان گشتاس اومد و گشتاس دین آورد بعد میگن خب بابا جمشید و کیومرث اینا بیچاره ها که ندیده بودن زرتشت رو که میگن نه روان زرتشت آفریده شده بود اینا چرا به روانش در 1400 که آمده بود اینا چرا ایمان نیوردن پس اینی که داره میگه اینا اصلا به کلشون داره ایراد میگیره. به خاطر که از, ز... از گشت ها ستارش کنه که آقا داره به زرفتاش مثلا ایمان آورده آله. خدمتون بگم که درباره طبیعی شدن اینا هم ببینین خیلی مسئله ساده است ببینین ما توی عوستا میبینیم که زهاگ یک ویژگایی داره سپوزه ششکله یک چیزایی داره اینطوری. زها که تو متون دوره اسلامی ببینید یه فرمانروای ستمغریه، حد اکثر چیز شاخداری که داره دوتا مار داره مثلا. بله. کاملا میگن کاخ داره، معاون داره، وزیر داره، ارتش داره، روزبان داره. اصلا ببینید یک زها که اژدهاهای سپوزه سه کله، چیه، اینا ببینید کم کم تو طول تاریخ زمینی شده. کاملا جنبه زمینی پیدا کرده. اهریمنو ببینید، اهریمن بابا این اصلا این انگره مینو این تو جای سرد در اپاختره در اسناد دوره اسلامی احریمند میشه یک کسی که میاد آدم ها رو گول میزن و یه کاری درو دروندان و دروج و اینا به اون نسبت داده میشن با در واقع بل... اه... کتاب آسمانی هم اصلا همسیخ هم میشه, میشه. این کاملا کاری زمینی میکنه ببینید زمینی شدن اینا تو طول زمان امر طبیعیه اینه که کیومرس یک زمانی گیمرته بوده هوشنگ نمیدونم دوران پاوشنگ بوده جمشید یه مخشایته بوده بعد اینا میان شاه میشن بعد... کاملا این مساله اصلا چیز عجیبی نیست حالا من فقط همین سه خط رو میخونم و اینجا تمام میکنم این سه خیلی چیزها رو تو این بحث های ما خودش توضیح میده من دیگه درباره این توضیح نمیدم مجمل التواریخ والقصص این نویسنداش معلوم نیست فصل سومش میگه که و هم همزه از کتابی دیگر حکایت کند از کتب پارسیان به لغتی غریب نوشته پهلوی بوده همتونستم بخونم که حق تعالی اول خلقت مردی آفرید و گاوی ان در مرکز بالاین سه هزار سال بیافت بماندند و این هزارگان ها حمل و سور و جوزا بود ببینید این تفسیر مجمل و تباریخ از کیومرس اول خلقت مرد آفرید و گاوی کجای جاشون ان در مرکز بالاین این 3000 سال بی آفت این با اون سیه چیز همخونه من یه بار عرض کردم باید. این اعداد ولی اینا نمادین هم. هستن بله. رمزی هستن بله. و این هزارگان ها حمل و صور و جوزا بود خب ببینید اینم یک سند اسلامی داره میگه یک کتابی از پارسیان پیدا کردیم به لغت قریب و داره کیومرس رو اینطوری به ما معرفی میکنه و بعدها من میگم که این گاو از این کیومرث جدا نمیشه بله. جناب آقای فیروزیش جناب آقای ایران مهرم تا حدودی تأیید کردن اینکه اردشیر پاپکان در اوایل دوری ساسانی در واقع دست برد روی هزارها و در این مورد صحبت می‌کردیم ولی ایشون فرمودن که بحث بحث حسنیت نیت است با سوء نیت چنین کاری رو انجام ندادن تا الان که شما تا حدودی معتقد هستید که این مسئله با سوء نیت صورت گرفته خب قبل از اینکه حالا فرمایشات خودتون بفرمایید خیلی مشتاقم بدونم که اصلا دلیل شما و ادله شما برای این سوء نیت چیه شما مثلا توی حقوق کفری که حالا ما می‌خونیم میان یعنی که شما وقتی که میخواین مثلا توی حالا اسخای میکنن از شنبندگان خیلی شاید بی رغب باشه مثلا توی مسئله چک قانون صدور چک اکثرا حقوقیه حالا میخواین کیفری بکنید باید سوء نیت رو احراز بکنید شما سوء نیت اردشیر پاپکان رو در دوره او... او... اوایل دوره ساسانی با چه ادللی در واقع چون اصل حسن نیت سوء نیتی که باید اثبات بشه سوء نیت ایشون رو با چه ادللی شما اثبات می‌کنید حضور برشناس شنبندگان من از الفا ایران مهرن استاد به خودم سپاسگزاری می‌کنم ببینید ما مشابه کردار با بابکان رو خیلی شدیدتر و این کار شدیدتر از دیگران سراغ داریم. انوبانینی در قرب فلات ایران. شی هو وانگ تی در چین. دو سه آدم دو سه نفر دیگه هستن. اینا گرفتن هر چی سند نینوس همینطور طور در متون آشوری. در متون یونانی آشوری ببین هم انوبانینی لولوبی کوهستانی. متون قبل خودشون نبود کردن که خودشون خستین فرمان رو باششه عش یه آدم جلوتری هست نمیتونید این کارکارکنکن ای رومیون بر بودن چ میرو کنه تاریخ های مختلف وجود داشت در زمانی نبود که بیا تاریخ از صرف به شروع کنه اما همون کردارو رو به کرد اومد به دلخواه خودشون متن بی مسئوری اومد یک سی از فرمان روایی یا حتی از دودماناشکن هست کرد یه سرشون گذاشت و بعد اینها رو اومد برای اینکه به هم برسند ها رو اضافه کرد. حسنیت در دست برد معنی نداره. بگین که این دزدی کرد برای اینکه به فقرا کمک کنه. نه آقا این دزدی کرد. برای چیش؟ برای من همیتی نداره. آگرشی وباکان هزاران کار خوبی دیگه در چیز منو کتاب نوشتن رو کار داره خوبش که چه ها کرد چه ها نکرد چه جوری حتی یه بودجه برای کمک به کشاورزان فراهم کرد که اینا زمین‌هاشون رو تک نکنن. شاهکار بود کارش. و با این همه خوبیش این حرکت رو کرد و به تاریخ اون زد و بعد یه نکته دیگه ادرشی بابکان داستان خدایان من نگفتم از بین برد ادرشی بابکان سالهای رو از بین برد سال تبیع فماریان داستان خدایان من مطمئنم پس از سقوط ساسانیان اتفاق بهش افتاده یعنی به هر علت داستان خدایانو خوندن آتای سدان دستشون به آتن نمیرسید داستان خدایان یونانی از بین می رف. به روم میرسید و داستان خدایان رومی از بین مال مسترم زیر شن بود، رو در و دیوار و ستون بود پاپیروس های شده رو و صندوق ها بود که مود در هر صورت، نکته بعدی ببینید واژه مردم که قبل از کیو مرس اومده مردم یه کلمه مفرد مرد تخم، تخم مرد تخم کسی که می میرد. یعنی انسان مرد تخمان یا مرد تخمان میشه انسان این پهلوی انسان عربی است. در کتیبه های پارسیه ها خبا نیشه هم مرتیه نامه نامه فرد میشه همه آدم عبریه مرتیه مرد مرد یا مرد یا مردم این یک واحد انسان انسانی میگن در واقع عادت هم توی متونه هم ابری یا متونه در واقع کتب آسمانی هم در واقع اینجا حضرت حضرت آدمی که گفته میشه به من اولین انسان مطرح نیست. اینا حتی استاد بودر هم مطرح کرده آدم هم به عنوان یکی از اولین افرادی که دارای دین و دارای شیوه زیست هستش اینا انسان در تورات به حسین انسان هستش که این ریشه های میان می‌آرودانی و ریشه‌های مصری داره ما اینا رو می‌دونیم نقوسی انسان در مصر کی هست نقوسی انسان در می‌آرودان کی هست با چه اسمی با چه شکلی وجود اومدن حالا بحثش اینجا نیست ده. ولی اون چیزی که فیروسی میگه مردم وجود اومدن اون نقوسی انسانه و بعد وعده پادشاهی خودش میگه نقوسی پاشا قبل از اون که سی نیست اینا مونتون ایرانی برای نینوس میگن اینا نخستین شاهان هستن حالا خیلی قدیمه تازه مساله بعد این که اینا جلوتر اومدن انسانی شدن خیر این ها در یشتها هم انسانم دوز عجیده میگم میمیگم شدBra در هم همشون انسان روز کیومرس و عجیده هاک کیومرس در حتی اسوره های زربانی نقصی انسانه ببینید مدت دو مکتب به راستی داریم مکتبی که میگه کیومرس نخستین پادشاه مکتبی که میگه کیومرس نقصی انسانه نه نقصی حالا انسانی که میتونه حرف بزنه خیر خیلی این اون فرد چینی که اسمش آلمن یولامینس پنوپه پنوکو همج اسمای داشت، نخستین انسانی است که همراه با گاوی اکت‌آفریده است. عین اون آقای اسکاندیناوی با همه همین نخستین انسان هستند که پس از مرگشون انسان‌های بعدی به وجود میان. ما شجر نامه داریم در بندهش که از کتاب اوستا بوده. این در کرده ما این رو داریم. این نخستین انسان با گاو نخستینش، یک اکت‌آفیدش در اون مکتب. و از اینا انسانای بعدی به وجونی مکتب نسبی در چین بوده در اسکاندیناوی هم رفته در ایران هم بوده این مکتب فققه کیو مرس باها گفتم و این جمله بعدی هم مکتب بعدی هم داریم ببین من بوده جمله دیگه میخونم پیش از تصدی کیو مرس به مراسم سروری میان همه جنگ بوده این و... از مرو جوز جواب میخونه دیگه اون خونده بوده این یک از میرخانده خیلی از اینا هست میرخاند یا چیز ابن عصیر. کامل تاریخ ببین... این حالا خیلی متاخر تار اصلا هست من از قصد از قبل اندخاب کردم بیدونه من جلوترش ببینید میگه پیش از تصدی کیومست به مراسم سروری میانه همه جنگ بوده و به دنبال آن گروهی از اوقلا تصمیم گرفتن که قدرت رو به شخص واحدی بسپارن و تاج رو به کیومست نقدیم کردن کیومست تایش داشت من تاج نمیخونش بذارم و او تاج بر سر نها و دور نشست اوندا داستان مسعودی و دیگرانه مسئله بعدی میگن که ببین اینا اونمن جلو عرض کردم که ببینید اون دو دیگه که موندن که چرا انسانی نیستن در ها و بعد میان جلته انسانی میگیرن ما عکس این داستان خیلی داریم یعنی افوادی هستن که انسانی بوده میون جلته شاهو برگ میگیرن در متون یونانی رسو تروی داریم تمام قهرمانان تروی درگیر داستان پرشاخو برگ شده شخصیت های ما در شاهنامه شاهو برگ شدن در متون اسلامی شاهو برگ شدن زحاک از یک استوره گشیری به یک استوره لطیفتر عنوبانینی بهترین مثال این داستان هست عنوبانینی که نقش بردستش هم هست بردشیری بابکان هر دا اینا بعد از مرگشون شدن اشخاص استورهی اون میده به, جنگ، میده به جنگ کرم عجیب و غریب داستانهای شگف آورد و کارنامه هست میده به دوران کاسیایی در بابل شده یه آدمخور. انسان ها میاد به جلو شاخ و برگ این شخصیت های کهاهن شاخ و برگ گرفتن در مصر ها ما اینو داریم آقای این هه بود که میگن هرم رو ابنخصستین هرم رو ساخته زمان زوسر که بعد می در میاد بعد میاد اصلاح میکنه این ه خدای پزشکی یه مقام الهی گرفت خیلی از امپراتوران روم رومه جولیو خیلی دنبال این قضیه بود که بعد از بشه خدا. اینو ما نبات هستیم که فکر کنیم بیاین و برگشون میرزه جمشید برعکسشو دقیقاً جمشید در گات ها یه انسانه میره به هندوستان خدا میشه یعنی عزیر. حالا نمیشه با همین استدلال که آقا ایران مه بودن که اونها کهترن ما مهتری اونها در موقع فرزندان ما مثلا چند خب چند شاهد دارم من خب بله هندیایی که هاشون خیلی متفکرتر و دا داستان یشتاس ما خودم به این اعتقاد ولی ببینید عرض کردم. ما یه سری داستان هایی درمی که میان جلده شاخ و برگدارتر میشن هرچی جدیدتر میشن شاخ و برگدارتر میشن نه ساده تر گاتا ساده تر از داست جمشیده ساده تر از جمشیده وده هاست پس این شخصیت کوهنی بوده که تبدیل شده به یک شخصیت ای این گاتای کوهن بوده بعد تو ودا ها بقیه و شخصیتش اینم هم بیچارهم همون دوش پیشدری کیانیان مام همون قضیه بوده اینا خیلی هم بودن شاهو برگ گرفتن سالاشون از دست رفته داستان خدایون از دست دادی باستان شناسی مام که مشالله ضعف داره و بدتر از همه اینا اجداد ما ضعف داشتن که مثل مصری‌ها یادگارهای سنگی به جا نذاشتن حالا نشاسته دنبال اینو میگیرید سازهای گلیشون معلومه چیز به دست نمیاری تنها چیزی که از دوران پیشدری کیانی برای مملکت باقی مونده و حوزه مملکت تپه اشرف تپه سارویی در اصفهان که اونم امروزه میخوان بکنن این سلجوقی یعنی دور مال دور سلجوقی میخوان بکننش دور سلجوقی واقعا این فاجعه است ببین تپه اشرف از تهمورس تو تپه موتون. ما دو اتفاق در اصفهان میفته که این یکی از دلایلی میگم که پیشدادیان وجود داشته دو اتفاق در اصفهان میفته یکی با روی جی هست که میریزه و در اونجا می نوشته که پوستایی پیدا شد با بوی در حال فساد پوست و بر آن خطی بود به یونانی که حقوق سربازان رو نوشته بود که ما میدونید مثلا دال اشکانیه یا سلوکیه احتمالاً اشکانیه که حقوق سربازان به یونانی نوشتن رو پوست این در باروی جه هست در تپه سارویه حتی نقطهش مشخص جایی فرو می‌ریزه که می‌فهمم اونجا گمبد بوده سقف بوده سقف گمبدی و بعد که این این می‌ریزه این تپه که بعد می‌فهمم این سازه هست و این سقف اون سازه است در روی پوست درخت توز یک سری مطلب به خطی ناشناخته پیدا میکنن کاملا متفاوته وقتی من هم رو پایین اصلا خیلی مشتاقم که یه سی ثانی در حد 30 سانی این تپه ساروی تابحال به حال پژوهش باستانی ناشناخته که مثلا این صورت میدونن سلجوقیش میکنن فقط میخوام این نکته بگم مش این تپه ریخت و یک نفر را پیدا کردن که این خون چون ما از چندین خط باستان ایران یکیش واقعا ناشناخته است بقیه هم میتونن بخونن احتمال به همون خط بوده وقتی ما آقا اون خط رو خون اسم تهمورس رو روش خوند دید. اسم تح... چه خطی بود ما ن... اسمش تو کتاب ابن ندیم ها الفرس من میتونم برات بیارم بعد حالا آه... قدمتش چقدر اون همون نوشته تعیین شد قدمتش اصلا داستان زمان عباسیان است ببینید زمان عباسیانه این که میریزه اینو دستور میدن میبرن بغداد یک مقدارش میخوان اسم تحمور سموج خونده میشه و بعد این داستان تطبیق داره میشه به اون وعده هایی که داده میگن حقیقت تاریخی بله یا نه تو قصتهای گذشته همین استناد کردید که مثلا خونش... برن نمیتون بخون از اون ور نابود میکنه بله. ولی از خونده شد. بله خیلی متشکلیم جناب آقای فیروزی گرامی شنوندگانی گرامی قسمت چلیکم هم اینجا به پایان میرسه ما اگر برسیم حالا از الان قول نمیدیم و اگه پجویشکران برنامه آمادگی داشته باشه بحث فلسفه تاریخ رو در قسمت چلده و چلسه ادامه میدیم اگه نشد باز هم هنوز هم در دوری کیومرس باقی خواهیم بود تا همه جوانه به مسئله تحلیل و تبیین بشه شما شنوردگانی گرامی رو تا آغاز قصد شیل دوم به خداوند متعال می سواریم خدایی ها رو نگهدار.